رنگ رو و نبز و قاروره بدید، هم علاماتش، هم اسبابش شنید، گفت هر دارو که ایشان کردند، آن امارت نیست، ویران کردند، بیخبر بودند از حال درون، از تعیز الله ما یفترون دید رنج و کشف شد بر وی نهفت لیک پنهان کرد و با سلطان نگفت رنجش از سفرا و از سودا نبود بوی هر هیزم پدید آید زدود، دید از زاریش کوزار دل است تن خوش است و او گرفتار دل است آشقی پیداست از زاری دل نیست بیماری چو بیماری دل علت آشق ز علتها جداست عشق استرلاو به اسرار خداست آشقی گرزین سر و گرزن سر است آقبت ما را بدان سر رهبر است هرچه گویم عشق را شرح و بیان چون به عشقایم خجل گردم از آن گرچه تفسیر زبان روشنگر است لیک عشق بی زبان روشنتر است چون قلم اندر نوشتن میشتافت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 از وی ار سایه نشانی میدهد شمس هردم نور جانی میدهد سایه خوابارد تو را همچون سمر، چون براید شمس انشق القمر خود قریبی در جهان چون شمس نیست شمس جان باقی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 کوه تا دراید در تصور مثل او چون حدیث روی شمس دین رسید شمس چارم آسمان سردر کشید واجب آید چون که آمد نام او شهر کردن رمزی از انعام او این نفس جان دامنم برتافت است بوی پیراهان یوسف یافته است از برای حق صحبت سالها بازگوحالی از آن خوشحالها تا زمین و آسمان خندان شود عقل و روح و دیده ست چندان شود لا تو فانی فینی فلفنا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 این خوم جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر قولت امنی فنی جای اون و اتجل وقت سیف قاوت اون صوفی ابن الوقت باشد. ای رفیق نیست فردا و گفتن از شرط طریق تو مگر خود مرد صوفی نیستی، هست را از نسی خیزد نیستی، گفتمش پوشیده خوشتر سر یار، خود تو در ضمن حکایت گوشتار، خوشتران باشد که سر دلبران، گفت آید در حدیث دیگران، گفت مکشوف و برهنگوی این، آشکارا به که پنهان ذکر دین، پرده بردار و برهنگو که من می نخسبم با سنم با پیرهن، گفتمر ار اریان شود او در ایان، نی نی کنارت نی میان، آرزو میخواه، لیکندازه خواه، بر نتابت کوه را یک برگ کاه، آفتابی که به این آلم فروخت، اندکی گر پیش آید جمله سوخت، فتنه و آشوب و خونریزی مجوی بیش از این از شمس تبریزی، مگوی این ندارت آخر از آغاز گوی رو تمام این حکایت بازگوی